بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وآلائه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى بن علي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أربعة خيال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا حسن خليقة وعفاف طعمة وصدق حديث وحفظ أمانة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الملسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد تبيسو بسيكومين حديث و اثر 221 که من اثر از عبدالله ابن عمرو بن العاص رضی الله عنهما کمیات اربعه و خلال اذا اعطيت هن فلا يضرك ما عزل عنك من دنیا چار تا خصلته چار تا اگر الله به تو ارزانی بده بهت بده فلا يضرك ما عزل عنك من دنیا دیگه از اون دنیا چیزی ازت گرفته بشه چیزی بهت zarar آسیبی نمیرسونه چیزی ازت کم نمیشه چار تا چیز داشته باشی برد کفایته اون چار تا چیز ز این دنیا داشته باشی برات کفایته چیه أولاً حسن خليقه حسن رفتار حسن أخلاقه أخلاقه دروس باشه سرشته دروس باشه باك باشه خوب باشه وعفاف وطعمه بان غزات ان طعامت حلال باشه باك باشه وعفاف وطعمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرمون لحم غذية بالحرام النار أولى بهو كما قال عليه الصلاة والسلام ان قشت ان خوني تغذية بشه با بغزايا حرام جهنم ان اولاتره یک لغمه حرامه سبب میشه که تو مستحق عقوبت و عذاب جهنمی بشی مال حرام از اسباب شقابتمندیه و از اسباب سعادت چیه؟ مال حلال، مال پاک، عفاف و طعمه و صدق و حديث صدق و حديث زبانی راست داشته باشی، راستگو باشی زبانی پاک داشته باشی، زبانی که درش زشتی نیاد، ناسزا نیاد، بدگویی نیاد زبانت پاک باشه، راست باشه، راستگو باشی از گونه دروغ و بهتان و غیبتی پرهیز بکنین چون نشانه منافق که مستحق عقوبت الهیه از نشانه های منافق چیه اذا حدث کذب فاذا وعد اخله وذات من اخانه نشانه های منافقه الله را بابت شکر گذار باشی سفاس گذار باشی که این خصلت و این صفت در تو نیست این صفت در تو باشه بابت شکر گذار الله باشی این یک ای از نعمت های بزرگی که الله به بندگانش میده صدق در اون گفتارشون در رفتارش و حفظ امانه و حفظ امانه اگه چیزایی که, که منافقینم ندارن امانت داریه و اذا تو من خان مؤمن امانت داره و این امانتش سبب میشه که مستحق بهش بشه برخلاف منافق که نداره مستحق چیه عقوبت و عذاب حفظ امانت امانت فقط در اون مالی نیست که به دست میسپرند که ازش محافظت میکنی نه حفظ امانت از اون امانتی که الله به گردنت از اون نماز اما امات بهگردنت روز امانت بگردن اون دین اسلام اون شریعت الهی امانت اناعرباً امات على السماات والرضی و ابین ان حمل نهها و شفقن منها و عمل انسان که متحمل شده شریعت الهی این امات امانت در رفتارت با الله امانت در رفتار با مردم با حقشون رو ادا کردن با اون لبخندت با اون رفتار درست با اون برخورده درست. اینها امانت امانت. امانات فقط اون سپرده های مالی نیست امانت تمامی اون حقوقی هست که الله بر دوش ما گذاشته از هر تکلیفی که چه نسبت به خالقه و چه نسبت به مخلوق بله قال المؤلف رحمه الله حدثنا ابو نعیم قال حدثنا داوود بن یزید قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما أكثر ما يدخل النار قال الله ورسوله أعلم قال الأجوفان الفرج والفم وأكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق ديس حديث حديث أبو هريرة رضي الله عنه وغفر الله له والأمة جميجياد أصلى صلى الله عليه وسلم فرمودا تدرون ما أكثر ما يدخل النار بیشترین چیزی که انسان رو وارد جهنم میکنه چیه ؟ قال الله رسول ال الله رسولش داتره قال الاجوفان. فرمودن، اون چیزهایی که انسان رو وارد جهنم میکنن بیشترین چیزها انسان رو وارد جهنم میکنه دوتا چیزه الاجوفان. جوف انسان دورون انسانه اون چیزی که از جوار انسان سر میزنه. از اون اعزایی که در اختیار انسان الله قرار داده اون دو تا عضوی که در بدن انسان الله گذاشته و سبب میشه انسان با اون دو تا عز جهنمی بشه چیه اولی الفرج شرمگاه انسان که با اون مرتکب zina میشه و دومی الفم دهان انسان زبان انسان حالا چه زبان با اون غیبت کردن تهمت زدن چه با خوردن اون مال حرام بیشترین چیزی که انسان را جهنمی میکنه این دوتا چیزن خاطر همین در حدیث دیگه داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلامی کسی زامن بشه بین این دو تا فکش و بین اون دو تا پاهاش السلطه سر میگه من برای او بهش زامن میشم کسی که زامن بشه که این دوتا را نگه داره حفظ بکنه میگه من برایش زامن میشم که وارد بهش بشه و بعد سال پرسید از اونها و ما اکثر ما یتخلال الجنه بیشترین چیزی که سبب میشه انسان وارد بهش بشه چیه؟ رسول الله سر اونها میپرسه بعد خودش پاسخ میده میگه تقوا الله و حسن الخلق بیشترین چیزی که سبب میشه انسان بهش بشه از جهنم نجات پیدا بکنه اولیش تقوا معامله و رفتار درست با الله متعال همون امانتی که قبلا در حدیث قبلی یاد شد تقوای الله رفتارت با الله نماز میخونی چون تقوای الله رو داری میترسی از الله از عقوبتش از خشمش میترسی به خاطر همین نماز میخونی به خاطر همین روزی میگیری پس بیشترین چیزی که انسان رو وارد بهش میکنه اولی درست بودن تعاملت با الله جل وعلا و تقوا پرهیزگاری و دومیش حسن الخلق اون تعاملت با خلق الله رفتارت با خلق الله درست باشه رفتار درست برخورد درست اخلاق نیکت اینها سبب میشه که الله پاداش بهش را بهت بده قال المؤلف رحمه الله حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الاعراب ناس كثير منها هنا وها هنا فسكت الناس لا يتكلمون غيرهم فقالوا يا رسول الله أعلينا حرج في كذا وكذا في أشياء من أمور الناس لا بأس بها فقال يا عباد الله وضع الله الحرج إلا امرأة اقترض امرأة ظلما فذاك الذي حرج وهلك قالوا يا رسول الله أنا تداوى قال نعم يا عباد الله تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد قالوا وما هي يا رسول الله قال الهرم قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان قال خلق حسن دوستو بي بيسو سوومين حديث حديثة عصامة بن شريك رضي الله عنك ميقيت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم و جاءت العراب نشاسي بودم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرابي أمدا ناس كثير من ها هنا وها هنا مردمان بسيار عزيمر ونوار أمدا فسکت الناس لا يتكلمون غيرهم همه ساکت بودن الا اونها داشتن صحبت میکنن فقال يا رسول الله علينا حرج في كذا و او اشكالي داره مشکلی هست که فلان کار رو انجام بدیم فلان کار یا فلان حرف رو بزنیم یا فلان چیز مشکلی داره فی اشياء من امور الناس در اون امور که در روزمرگی انسان رخ میده در انواع تعاملی که با همدیگه مردم داره لا بعسبيها که مشکلی هم در اونها نبود قال یا عباد الله، رسول الله سبحانه بعد از اونها پرسیدن از اون تعاملشون، رفتارشون، داد و ستدشون با خودشون، فرمودن یا عباد الله ای بندگان الله، وضع الله الحرج، ای رفع الله الاثم، یعنی از این چیزهایی که شما یاد کردید، الله گناه اون عقوبت را از شما برداشته، یعنی در مقابل این چیزهایی که شما پرسید، چون سامن میگه که في اشياء من امور الناس لا بأس بها که در اون نبود یعنی مشکلی در ند بود از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیدن بعد رسول الله صلی علیه و سلم گفت ای بندگان الله در مقابل اونها الله اون حرج را از شما برداشته یعنی اون گناه و اون چیز را از شما برداشته که در مقابل اونها شما گناهکار بشید و الله قدرتتون بکنه الا استثناء میکنه در اون تعامل و داد و ستدی که با هم دیگه داشتن که پرسیدن یک مساله الا امرا اقترض امرا ظلم اقترض إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذاك الذي حرج من اقترض من عرض أخيه شيئا يعني بخاط شخصي غيبت برادر مؤمن بكونه برادر مؤمنش اقترض إنجا أسباب كنا يهس كسي بخاط بدقوية برادر مؤمنش بكونه ولا بغيبات ولا بطهمات وإفترا بظالم باشه باون مظلوم اقترض امرأن ظلم ظلمش بكونه باون ناصزا گویش و باون بدقویش و اون غیبتش فذاک اینو تعامل اینو رفتار سبب میشه که شخص در حرج و در سختی بیفته و هلاک بشه ذک حرجه یعنی این شخص که در سختی افتاده و هلاک و هلاک شده با اون گناه و معصیت غیبت تهمت دروغه اینها حقوق بندگانه که بخشودنی نیست اینها روز قیامت حساب و کتاب میشه الله شاد از حق خودش بگذره ولی حق مخلوقات الله قصاص خلقش اونجا ترازوی عد رو برپا با میکنه و بندگان حق و حقیق بگردن هم دیگر دارن از هم دیگر میگرن چناش در حدیث اتدرون من المفلس داریم خب بعد از اینکه این صحبت تموم شد بعد از اینکه این قسمت شد از رسول الله صلی الله علیه و سلم میپرسن یا رسول انا تداوی آیا اگر منیس شدیم دارو مصرف بکنیم قال صلی الله علیه و سلم نعم یا عباد الله آری ای باشید. فإن الله عز و جلم جل یاعدعا ععلم یخل خ ده اللهمرزی را یافرید الله مگر اینکه برای شفا گذاشته مریزی بیماری بدون درمان شما ندارید شاید منو شما ندونیم. شاید پزشکان امروز کشفش نکنن ندونند. ولی الله جل على مریزی را نگذاشته مگر اینکه برای اون درمانی گذاشته غیر و واحد مگر یک بیماری که درمان نداره قالوا ما هو يا رسول الله اون چیه اون بیماری که درمان نداره. قال الهرم که پیری قال یار رسول الله ما خیر ما اعطیال انسان باز سوال دیگر بهترین چیزی که انسان داده شده بهترین نعمت چیه؟ قال خلق حسن قال صل الله علیه وسلم خلق حسن اخلاق نیک بعد از اسلام البته بعد از اسلام و ایمان بهترین نعمت یک انسان اخلاق نیکی داشته باشه. گفتیم دیگه زن اهل تهجد برای را حبس میکنه بعد با را بحیون جهنمی میشه با اون رفته با بحیون. سال خوش رفتار باشه خوش برخورد باشه رحمت در قلبش باشه مهربان باشه صبور باشه. اینها اخلاق نیکی که ماها باید بر اون اخلاق نیک باشیم. ما گفتیم اینجا به مسئال فکری ن فقط یک مسئله ای که اینجا تو یک پرانتیزی نیاز هست به توضیحش الله و وقتی که ما کتابه فکری میکنیم مثلا خوندی بشه تو ف ادرار نجسه درست ادرار نجسه ولی آیا هر ادراری نجسه؟ مثلا ادارار حیوان بز. وضعاً، ما نفسه؟ نحن نعلم بحديث بسيخ هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن الله لم يجعل في محرم عليكم من دوا در روايتي يا عبد الله تدو ولا تدو بالحرام ابن الله، خطونا درمان بکنید ولكن نبا حرام فإن الله لم يجعل في محرم عليكم من دوا الله در حرام درماني براتون قرار نداده خب، ادرار نفسه، إلا ادرار انحيواناتك قشش حلالة از کجا قررت ام قضية؟ از از اون نسخه ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم با صحابه و یارانش پیچوندن نسخه ای بهشون تجویز میکنه نسخه چی بود اومده بودن درد شکم داشتن فرمودن رسول الله صلی الله علیه و سلم برید از ادرار شطور بنوشید با شیرش خب ادرارش شطور اگر نجس باشه نجاست بر ما حرامه نجس میشه حرامه نجاست حرامه نوشیدنش پس چون حلال شده و به عنوان دارو تجویز شده حرام نیست و چون حرام نیست نجسام نیست درسته؟ لازمشه نمیشه یه چیز نجس که حرام نسخه ای بشه تجویز بشه برای یک بیماریه چرا؟ چون رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن هیچگاه در حرام برای شما درمان نیست. هیچ وقت مشروب درمان نمیشه، هیچ وقت گوشت خوک درمان نمیشه. نعم شیخ. قال المؤلف رحمه الله حدثنا موسی بن اسماعیل قال حدثنا ابراهیم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل صلى الله عليه وسلم وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير أجود بالخير من الريح المرسلة دي بيسو, بيسو حديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كده أبلن جلسة إمروزمون بيششارك عادي، أز أصالة مذاكرية علمية ودينية، ونجا كبحث قرآن ووحي وكاديم كالله جل شأنه، أز بس قرآن القرآن وكذلك وحين إليك روح من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا قرآن وحي إلهي روح زنجانية. قرآن و الهی نوره هدایت راه رو برات روشن میکنه قلب مردات روزنده میکنه قلب تو رو روشن میکنه گفتیم رسول الله صلی الله عليه وسلم یکی از چیزهایی که مؤمنین عایشه یاد میکنه و همچنین اینجا ابن عباس یاد میکنه در رمضان سخاوتمندیش بیشتر میشد تا جایی که به وزش باد توصیف میکنند ابن عباس هم هم میگه کان رسول الله صلی الله عليه وسلم اجودال ناسب الخیر سخاوتمندترین مردم در خیر خواهی بود، در خیر کردن بود، در انفاق بود، سخاوت من درین و کان اجود ما یکون، و بیشترین وقتی که رسول الله سلام در اون سخاوتش بیشتر میشد، فی رمضان، یعنی در موه رمضان، در رمضان منظور موه رمضانه، حین یلقاه جبریل صلی الله علیه و سلم وقتی که جبریل علیه السلام با رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاقات میکنه برای مراجعه و دور قرآن، چنانچه در مراز وفاتش رسول الله صلی الله علیه وسلم دوبار قرآن رو دور میکنه با جبرایل خوندن قرآن، تفسیر قرآن، سبب میشه که ایمان انسان تجدید بشه، سبب میشه که انسان دل از این دنیا بکنه سبب میشه که مال دنیا عزیز نباشه زیر ششمانش اندیکه از فواید قرآن، مدارسه قرآن و همچنین حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم وكان جبريل يلقه في كل ليلة من رمضان هرشب جبريل يوم انزل الرسول صلى الله عليه وسلم بريه مراجعه دور القرآن يعرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم القران الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل فاذا لقيه جبريل كان الرسول صلى الله أجود بالخير من الريح المرسلة زمانك جبريل ميعاد بملاقات الرسول صلى الله عليه وسلم از وزش اون باد توندم رسول الله صلى الله عليه وسلم انفاقش مشتر بود سريتار بود در سرعت تشبیه سرعت به سرعت منی رسول الله صلی الله علیه و در اون کرمش در اون بخششش، این قدر سری بود مالی به نمی رسد. از اون مالش کسبش نمی مگر اینکه فورا انفاقش می کند. ابن حجر رحمه الله می گیاد، الباری. قیل الحکمت فيه ان مدارسة القرآن تجدد له العهد بمزيد غنى النفسي والغنى سبب الجود مذاکره قرآن، مراجعه قرآن، سب میشه که انسان یادآور بشه. سب میشه که انسان اون ایمانش تجدید بشه. ایمان که تجدید شد نفس غنی میشه غنی شدن نفس بینیازی نفس هم میشه که انسان بخشش داشته باشه سخاوت داشته باشه بزرگ بکنه از اموالش در راه الله پس اینها راهای رسیدن به این مقامه تلاوت قرآن فهم قرآن قرآن رو تلاوت بکنیم و مجرد تلاوت قرآن به این منزلت و این مقام نمیرسیم. باید قرآن رو بخونی با تدبر قرآن که خوندی با تدبر سر میشه که نفس غنی بشه خود را بی نیاز بدونی خود وقتی که اون آیاتی که الله الله از خودش برای تو منو یک یاری یاد میکنه یک یاوری یاد میکنه انتصر الله یا انتصر کن الله نصرت دادی الله نصرت میکنه یا فرمودی الله و ما علی الله فهوا حسبه کسی که بر الله اعتماد بکنه الله کافیه براش یا علیس الله بکاف عبده یا الله برای بنداش کافی نیست خب اینها انسان را بی نیاز میکنه از خالق به خالق میبنده وقتی که این نیایات رو انسان بکنه و معناش بدونه میشه که دلبسه به آخرت و وعده های الهی در بهشت بشه دل از این دنیا بکنه هم مش کجاست هم مش رضای الهی و بهشت الهی وقتی که انسان دل به آخرت بس دل به بهشت بس دل از این دنیا میکنه دلش از اون وابستگی و دنیا و طمع در اون دنیا کنده میشه علامه طباطبایی میگه شب نشر جودهی بالخير في العباد بنشر ریخ القطر في البلاد یک استعاره هایی که ما در این حدیث داریم اینجا ابن عباس رضی الله عنهما یاد میکنه میگه خب رسول الله صلی الله علیه وسلم همچون بادی بود که میوزید باد وقتی که میوزه همراه خودش ابر میاره و اون ابر همراه خودش بارونی داره که سرزمین رو آباد میکنه میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم اینجا همچون بارانی توصیف شده که همچون اون قطرات باران چطور سرزمین رو آباد میکرد رسول هم صلی الله عليه و در اون رمضان با اون قرانی که دور میکرد مراجع میکرد قلبها را بیدار میکرد اگر ابرها و بارون زمین رو آباد میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلام اون وحی که برش میشد قلب‌های ما را زنده میکنه و قلب‌های ما را آبیاری می‌کنه ابن حجر بعد از اون یک مسائلی رو نقل میکنه از نووی و غیر میگه در حدیث فوائدی هست از جمله اون این که انسان همیشه اهل سخاوت و بخشش باشه و در رمضان تلاشی بیشتری داشته باشه برای بخشش وقتی بیشتری بذاره برای آخرتش حالا چه اون تحجد، چه از اون تلاوت قرآن وقتش رو بذاره برای الله شما گفتم بخشش و سخاوت را فقط در جانب ماده و مال ندونید فقط این نیست که شما سخاوتمند باشید با دادن مال نه سخاوتمند گاهی با عیادت مریزه، گاهی با همون تلاوت قرآنه وقتت رو بذاری برای الله و دینش حتی اگر عیادت مریزی میری تشیی جنازه میری لله باشه این سخاوتمندی، انسان از وقت خودش بده به دیگران، از دنیای خودش بزنه برای الله، یعنی کارهاش رو لله انجام بده، این حقیقت سخاوتمندیه، فقط سخاوتمندی در بخشش مال نیست، بکه در خیرخواهیه، چه در احترام، چه در تقدیر، چه در سلی رحم، و چه در تلاوت قرآن چنانچه ابن حجر و نبیبه و دیگران یاد میکنن. ربط حدیثم، با بابی که ما بخاری گذاشته بر رو بابی که گذاشته بود باب حسن الخلق ای دفقیهو و رسول الله سبحان در قرآن دور میکنه مراجعه و دور قرآن و فهم قرآن و ملاقات با جیبریل سبب میشه که تجید ایمان بشه سبب میشه که از قبل بهتر بشه و این چین داره بس میکنه یعنی این فواید مدارسه هست و مراجعه علمه همونطور که اینجا ابن عباس رضی الله عنه یاد میکنه هر یک از ما شکی نیست که میانه وقت یاد گرفتنمون نمون و وقت جهلمون با هم دیگه قابل قیاس نیست ما اینجا میشینیم حدیث از رسول الله صلی الله علیه و میشنویم با آنکه که نشنیدیم خیلی با هم دیگه تفاوت داریم من به عنوان یک شخصیت به نام فلانی قبل از اینکه حدیث از رسول الله صلی اللہ وسلم یاد بگیرم و بعد از اینکه حدیث از رسول الله یاد بگیرم با هم دیگه فرق داریم شخصیت قبل داریم و بعد داریم و انسان متغیره انسان حال روزش عوض میشه خاطر همی رسول الله صلی الله سبات ميخصاً يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك قلب من الصوار بعد دينه تغرار بده الله پناهمي بوردنا از انحراف اللهم من ان يعودو بك من الحور بعد الكور بور الله پناهمي بورد بهت از انك جمرها بشن بعد از ادايات ميت ارسيد از قمراهي از, از, از, از ميل و انحراف قلب زائفة قلوب العبادة بين أصبعين من أصاب الرحمن يقلبها كيف يشاء قلب مها بيندو الله هرقها و هرتوري بخط الله عوازش ميكون ق شخص میبینی اهل تهجده چنان چه رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایان 70 سال عبادت الله را می کنه عمل رجله یعمل 70 خلیف با عمل اهل الجنه ثم یختم بعمل اهل النار فیدخل النار افتصل انا به شیون انجام میرسه پس با عملی از عمل جهنمیان وارد جهنم میشه انسان حال روز خودش نمیدونه از عاقبت خودش نمیدونه علم و بصیرت و فقه در دین سبب میشه که خودش, خودش, خودش رو اصلاح بکنه خودش از جهنم نجات بده اگر خودت اصلاح نکردی تو هستی که مقصری در اون ودرون عذابي كي الله برات قزشته قال المؤلف رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير الا انه قد كان رجلا يخالط الناس وكان موسرا فكان يأمر غلمانه ان يتجاوزوا عن المعسر قال الله عز وجل فنحن احق بذلك منه فتجاوز عنه ديو 25 حديث حديث ابو مسعود الانصاري كين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ياد مكنه شخصي محاسبه میشه از اون اشخاصی که در امتهای پیشین بوده حالا یاد شده همون شخصی که گفت که مرا تیک تیکی بکنید و بسوزانید و قسمتی در هوا و قسمتی در ری خشکی و پراکنده بکنید ولی این حدیث اسناد بهش میشه در بحث نواقذ ایمان که شخص عزر به جه داده میشه در اون عمل کفری یا اعتقاد کفری که داشته حالا ما اون قسمت توضیح دادیم در شرح نواقذ اسلام اینجا نیاز باست کردن و مطلب عذر به جهل و بحث موانع و تکفیر و اینا میگه به اونجا بر می‌گید نیاز به باز کردن بحثش نیست خب اینجا یک مسئله هست اینجا اشاره شده به اون شخص شخصی از امتهی پیشین که قبل از شما بوده رسول الله ص از اون یاد میکنه میگه فلم یو جدله من الخیر. عمل خیری نداشته الا یک چیز الا ان قد کان رجلا یخالط الناس شخصی بوده که نشست برخاست با مردم داشته تعامل با مردم داشته گوشیگیر نبوده و توصیه را الله وسلم به همینه مع الناس و یسب على آادام خیر من الذي عزل اون کسی که با مردم نشست برخواست میکنه و سب میکنه و تحمل میکنه در مقابل بدی بهتر از اون کسی که حضلت انتخاب میکنه گوشیگیری رو انتخاب میکنه. خب اینجا این شخص میگه که این شخصی که روز قیامت وردنش برای حساب و کتاب ولا حساب و کتابش بکنن عمل خیری نداره جز اینکه این شخص مردمی بوده نشست برخاست و مردم داشته و كان مو ثروتمندم بود. و كان یه مرغ او اگر اون خدمتگذارانی که داشت بهشون می اون کسایی که قرض گرفتن بهشون مهلت بدید یا ازشون گذشت میکنید کسی که نمیتونه قرضشو اددا بکنه ثروت من بود پول قرض میداد بیننید. این. این عمل خیری هست که این شخص انجام داده شخص ثروت شخص مردمی که به مردم کمک میکرد یای می این نوع مردمی بوده نشه. قال الله عز و وجلال این شخص روز قیامت او رو میارد. عمل خیری نداشته جز این که غیر از اون ایمانی که سبب میشه بهشتی اشتی بشه ایمان به الله متعال عمل خیری که انجام میداده چی بوده؟ پول قرض میداده و در مقابلش سب میکرده به طرف محلت میداده یا میبخشیده برای اون شخص این مال و این بخشیدن مال سبب میشه که الله جل و علی روز قیامت بگه فنحن احقو به ذلك امن ما اولاتریم به این بخشش که او را ببخشیم تجاوز و با الله او را میبه و دستور میده که رو مجازات نکنه. به خاطر بخشش مالش این فضیلت قرض دادنه فضیلت مهلت دادن و یا بخشودن به با اون کسی که محتاج و نمیتونه قرضش عدا بکنه. تو دینی کسی را دا بکنی اون هم غم مالی رو از دوش کسی رو این همیت این بخشش ماله بخشش مال را کم نگیرید. این شخص هیچی نداشته جز اون بخشش مال خلاص آچنا را یاد میکن. چیزی ندنداشه جز بخشش مال صبر و تحمل کردن در مقابل اونهایی که ندار بودن فقیر بودن محتاج بودن این بخشش سبب شد که این فضیلیت را کسب بکنه و الله بهشتیش بکنه قال المؤلف رحمه الله حدثنا إبراهيم بن ابن المنذر قال حدثنا معن عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن نواس بن سمعان الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم قال البر حسن الخلق والإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. تيسو <تصفيق> حديث حديث نواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه كم جال پرسیدم از رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم از خوبی و گناه از ثواب و گناه پرسیدم قال البرو اون چیزی که ثواب داره خوبه چیه؟ حسن الخلق ما می‌بینیم در شهر بر خوبی در هر مقامی بی یک چیزی تعریف شده جایی به نسبت به اون خاشاکی که از خیابونو کوچه جمع می‌کنیم. جایی بر خوبی در لبخند در چهره برادره جایی با درست سخ جایی با تحمل صعب جای برخوبی به ایمان و تقوا این یکی از نمونه های برخوبی رو یاد میکنه یکی از اون خوبی هایی که سبب میشه مثل همون حج عرفه قبلا یاد شد یکی از اون خوبی هایی که سبب میشه تو بهشتی بیشی چیه اخلاق که درست اون چیزی که در اولین حدیثی که شروع کردیم یاد شد که سنگین ترین عمل در ترازی اعمالت بهترین خوبی چیه اخلاق درست اخلاق درست رفتار درست اخلاق خوب والایثم ما حکا و وکرهت ان يطلع عليه الناس بر اینه چون می از رسول الله صلی الله علیه خوبی چیه تاون اون خوبی رو انجام بده خوبی چیه اخلاق خوب اخلاق درست بدی چیه گناه چیه که من ازش پرهیز بکنم یعنی فرمودن والایثم ما حکا فنفس و دلوقتي في صدرك اون چیزی که در تو ایجاد استکاک بکنه اون عملی که در قلبتو ایجاد احتکاق بکنه تردید بکنه دلتنگی بکنه یعنی وقتی که اون گناه رو میخوای مرتکب بشی دلت تنگ بشه وقتی که میخوای انجامش بدی سنگین بشه بر قلبتو میخوای بری بان بگیری از بان حالا با دل خودت کلنجار میری این عالم فتوا داده 4 درصد مشکلی نیست این عالم گفته حرامه قلب تو راضی نیست قلب تو راضی نیست نمیدونی جاهلی الان حق با این عالمه حق با این عالمه از کی فتوه بگیری؟ از نفس خودت فتوه بگیری از نفس خودت فتوه بگیری نفس تو چی میگه؟ آیا دلت راضیه؟ قلبن آیا واقعا احساس میکنی که نوش جانت میشه یا نیش جانت میشه؟ چی با خود فکر میکنی؟ روز قیامت جلو الله میسی؟ الله بهت عز میده یا عز نمیده؟ چون ربا حسنه سختیه فأذن و بحرب من الله دشمنی و روبری با, رو رو با الله رو میشی. به جنگ با الله برخواستی با اون ربا خب الان بعضی ها مجوزش دادن آیا تو آمادگیش داری که به جنگ با الله رو در روی با الله در بیایی و یا واقعا آمادگیش داری پس نفس خودت فتوا بگیر لازم نیست که هر چیزی که حرامه شر بیاد بهت بگه حرام حرام حرام مثلا بیاد بگه شر هرین حرام تریاک حرام شیشه حرام آن من دیگه همی ستا چور مورد بیشتر حفظ نیستم. حالا نمونه های مختلفی از این مخدرات داریم ما نمونه های مختلفی داریم از اون هریین شروع میشه تا مابقی شرع نمیده بگه هیریین حرامه شرع گفت گفته لا ضررا ولا ضرار حق ضرر اصلا به نفس خودت نداری حکم شیه بعد حدیثی از احادیث رسول بیارد بیارن یا آیه‌ای از قرآن نفس خود تا بگیر حکم شیه مثل اون صحابی میاد میگه یا رسول الله بخمزه‌نا بکنم با مادرت گفتم یا رسول الله من من صحبتی دارم بالاخره نیاز دارم گفت که با خالت راضی میشی با خواهرت راضی میشی حالا سوال همین قضیه رو معکوس کنم تو هریین و مواد مخدر راضی میشی بچت متعاد بشه کسی از شما راضی میشه بچش متعاد بشه یا کسی بیاد زن متعادی رو به همسری بگیره راضی میشید همسرتون متعاد بشه پولتون مالتون به فنا بده غیر از اون حالت زشت و نفرت آمیزش خب دیدید دیگه چه چهره نفرت آمیزی دارن اونایی که معتادن سر و زیر نمیتونن چه شاشون باز کنن سان یک حال روز زشت زننده ای داره درست یا نه نیازه که فتوا از قرآن و سنت شما برداشت بکنید و بیاد حکم بده نیازه از نفس خودت فتوا بگیر خیلی چیزا از من در شرح مصالح حدیث مثال زدم در بحث خوارم مروات سیگار بلفرضم zarar اثبات نشه بگن آقا این نیکوتینش گرفته شده و نمیدونم ضرری نداره و این الان سیگارای الکترونیکی اومده خب ما بگیم ذره رو زیاد نداشته باشه من به با عنوان استاد شما اینجا نشستم دارم حدیث رسول دارم شرح میدم تصورش بکنید من اینجا سیگار به دست گرفتم فوت میدم به هوا چه تصوری دارید شما زیبا کلاس داریم حجب شیخ چه کلاس داره سیگار داره میکشه یا به خودتون میگی چقدر این بد سرشته. چقدر این دیگه بی حیاس بی شرمه تو جو اومدت سیگارم داره میکشه شر نمیکنه کدوم یکی میگید بی شرم و بی یا با, با کلاس نیاز نیست که خیلی از چیزها دلیلی از قرآن و سنت برش بیاد انسان از نفس خودش میتونه فتوا بگیره دل خودش ببینه نه که در هر ای بگه که آلا من اومدم از دلم فتوا گرفتم گفته که نه مشکلی نیست این در صورتی که دلیلی از قرآن از سنت نیافتی رفتی تحقیق کردی جستجو کردی اونجا هست که به خط آخر رسیدی نه که هر مسئله ای شد بعد بگی که نه من از دلیل خنافتو گرفتم دل من گفته که نه نا مشکلی نداره دلم روشنه در دل حدیث دانی رسول الله صلی الله علیه و سلام بفرمایان البر ما سکنت الیه النفس خوبی نفس با اون آرام میگیره دل آروم میشه دل خوش میشه وقت ما الیه القلب قلب مطمئن میشه آروم آرام میگیره والاثم ما لم تسكن الیه النفس گناه اون چیزی که نفس تسکین پیدا نمیکنه آروم نمیگیره قرار نداره اون دل ولم مطمئنه الیه القلب قلب آرام نمیگیره و این المفتون هر چقدر که اون مفتی ها مفتی بهت فتوه بدن مجانی بهت فتوه بدن هر چقدر بهت فتوه بدن اونه قلبت رازی نیست دلت رازی نیست بس فتوه گرفتی یه طرف به قلب خودم بنگر که آیا واقعا اون فتوهی که بهت دادن از روی دلیل بوده نبوده آیا دلت قانعه آرومه با اون فتوهشون یا نه پس گناه دو تا علامت داره اولیش محاکف نفسی بر نفس سنگی باشه نمیخوای کسی ببینه سیگاره میخوای در خلوت بکشی نمیخوای جلوی جمع بکشی بدش میشموری نفس در دل خودت راضی نیستی و کرهت ان يطلع عليها الناس ذوهم گناه اینکه دوست نداری مردم روش مطلع باشن متاد نمیگه من متادم میگه خیلی کم روش نمیشه که بگه من متادم بچه از سوی مدرسه پدرش متاد روش میشه بگه پدرم متاد یا مادرم متاد میتونه بگه والله سخته برم بچه زشتش میشه زشتش میشه پس این دو تا علامت بر تشخیص گناه یک محاکفه نفس بر نفس سنگینی بکنه اساس آرامش نداشته باشی. و دوم کره تن يطلع الناس دست داری که مردم برش مطلع بشن ابن رجب رحمه الله در جامعه البحاکم در شرحه من حدیث میگه بله فهذا يدل على ان الحق والباطل لا يلتبس امرهما على المؤمن البسيط و که بسیرت داره دلش پاکه با ایمان متقیه حق و باطل برای اون فرد مؤمن قاطی نمیشه با هم دیگه راحت میتونه با اون نور ایمانش حق رو از باطل تشخیص بده مؤمن حقیقی با بصیرت و علم این فضیلت علم شرف علم علم به تو شرف بده با اون علم میتونی خوبی رو از بدی تشخیص بده بل يعرف الحق نور الذي عليه حق را میتونه تشخیص بده با اون نور که بر روی حقه فيقبله قلبه قلبش هم می‌پذیره میگره با اون و عن الباطل فينكره و لا يعرفه و اما باطل ازش نفرت داره دوست نداره انجامش بده کرهش داره بغضش داره و همین الله جل علا در قرآن میگه وما كان لی ولا ولی مؤمنتن اذا قدر الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخياره این آئی را بهش میکنه ابن رجب حنبلی رحمه الله که انسان در مقابل عوامر الهی و دستورات رسول صل الله صلی الله علیه وسلم حق اختیار رو نداره باید با انشراح السدر بفذیره آرامش میگیره. اگر در دل خودش نو دید گدون که مشکل ایمان ایمانشه. چون ایمان سبب میشه که شرع الهی بر دل بنشینه چنانچه الله در قرآن میگه فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت و يسلمو تسليما فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا و ربك قسم بیاد میکن الله جل و علا و خودش که ایمان ندرل ای محمد بتو و بمن تا اینکه تو را حاکم میان خودشون قرار بدن در اون اختلافی که دارن در اون مسائلی که با همدیگه شجار و اختلاف دارن توش تو حاکم بشی ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما سپس در نفس خودشون احساس حرج نکنن نفسشون با اون آرام بگیره مومن چیه اینه نفسش با حق و حقیقت با شریعت الهی آرام میگیره و یسلم و تسلیما و کاملا تسلیم میشه مثلا شاید زنی بیاد بگه بحث تعدد مثلا بشه میگه که من دلم آروم نمیگیره دلم نمیخواد شوهرم زن بگیره خب مگه زن راضی میشه که شوهرش زن دیگه بگیره رسول الله صلی الله علیه و آله به زینب وقتی که میگه با خواهرم ازدواج کن میگه او یرضى النساء از ذلك میگه زن‌ها راضی میشن زن طبیعتش خاصیتش راضی نمیشه بلکه خب زن مؤمن و متقی نمیاد مقابل شر بی میکنه نمیاد استسادگی میکنه میگه شرع خداست قبول میکنه چه موقع اون زن بیتابی میکنه بی شما که نمیتونه در مقابل شرط تسلیم بشه ضعف ایمان پس معیار تشخیص خوب از بد ایمانه با اون نور ایمانه که تو تشخیص میدی با اون علمه که ایمانم با اون علم ساخته میشه با اون ایمانه و با اون علمه که تو بصیرت پیدا میکنی و میتونی خوبی رو از بدی تشخیص بدی وگرنه اینکه شخص بیاد بگه من از قلب خودم فتوا گرفته یا قلب من اینجوری با این مسئله اینجوری روشن شده خیر تو نمیتونی با نفس خودت خوبی را از بدی تشخیص بیری با نفس خودتو بدون علم و بدون بسیرت نمیتونی تشخیص بیری وقتی بدونی تشخیص بدی که نور وحی داشته باشی با نور وحی بتونید بفهمی که این کار خوبه یا این کار خوب نیست سبحانه سبحانه و سبحانه کنه الله محمد و الله محمد و صده الله محمد و علا محمد